اگر به مذهب تو خون عاشق است مباه صلاح ما همه آن است کن تو راست سلاح سواد زلف سیاه تو جائل و ظلمات بیاز روی چماه تو فالغ الاسباه سواد زلف سیاه تو جائل و ظلمات بیاز روی چماه توفال قل اسباح ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص. از آن کمان چه و تیر چشم نجا ز دیدم شده یک چشمه در کنار روان که آشنا نکند در میان آن ملا ل چ حیات تو هست قوت جان وجود خاکی ما را از اووس ذکر رواه به داد ل لبت بوس ای به صد زاری گرفت کام دلم زو به صد هزار ال دعای جان تو ورد زبان مشتاقان همیشه تا که ببود متصل مساب و صبا صلاح و توبه و تقوا ما مجو حافظ ز و عاشق و مجنون کسی نیافت سلام